در باره ویلا ویلا و توضیح دهید حالا ویلا و برا این ویلا چی هست ویلا تقریبا در خود اسلام چند نوع ویلا داریم ویلا علی الاسلام داریم ویلا ای ایمان داریم یک ویلای دیگر هم داریم عقد موالاتی میگوین حالا ویلا در بی و شراه در معاملات کسی کنیزکی را میخرد کنیزکی را میخرد و وقتی کنیز را خرید بعد از اون که کنیزه خریده شد یا غلام میخرید غلام باشی کنیز فرق نمیکنه حالا این غلام مالی او هست بعدها اگر این غلام آزاد شد آزادش کرد بعد از آزادی اگر این داره فرزند نبود وارثی نداشت میراث این به همون کسی برمیگردد که او را آزاد کرده است در مدینه منور همچنین عقدی منعقد شد حضرت بریره رضی الله تعالی عنها را فروختن حضرت آیشه گفت من تو را میخرم آزاد میکنم اون ارباب اولش گفت که آزاد میکنیم ما میفروشیم اما ولای مال ما هست. یعنی اگر بخواهیم ما داره وارثی نبود، اون ولایش مسئولیتش ما, ما هستیم دیگه. مسئولیم او ما هستیم. سرپرست ما هستیم. به ما برمیگردن حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این مسئله رو با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و در میان گذاشتند. نبی مکرم اسلام صلی علیه و وسلم فرمودن حالا بگیر آزادش بکن ویلا مال تو هست مال اونها نیست بالا منبر تشریف بردن این حدیث هم داخل صحیح بخاری اومده و هم در سنن ابی داود و کتابهای های دیگر این حدیث اومده نبی مکرم اسلام فرمودن بالا منبر ما بالو اقوامن یشترتون شروطا ليس فی کتاب الله من منشترات شرطا ليس فی کتاب الله فهو باطلون باطلون باطلون چه خبره که بعضی افراد شرایط رو میگذارن برای خودشون که در دین الهی اینها نیستن هرکسی کسی شرطی رو گذاشت که در دین الهی نباشه اون شرط باطله پس شرائطی که ما در شریعت اونها مخالف امور شرعی باشن اون شرط باطل است باطل است باطل است حضرت آیشه آزاد کردن و بلا هم به حضرت آیشه برمیگرش برگشت حالا وقتی که یه مسئله باید شد وقتی که کنیز آزاد بشه بعد از آزادی اونجا خیار ایت دارد یعنی وقتی کنیزی رو آزاد کردن وقتی که آزاد شد اگر ازدواج کرده بنابر آزادیش میتونه با اون شوهر قبلی ازدواج نکار رو فسخ بکنه نکار رو میتونه فسخ بکنه چون آزاد هست حالا آیا با در عقد قبلی میمونی یا نمیمونه نمی این اختیار رو دارد همین کار رو حضرت بریره کرد همسرش مغیس نام داشت که و حضرت بریره رضی الله تعالی نها فرمودند که من از این اختیاری شریعت برای من گذاشته یعنی میتونی از خیار عطق استفاده کنی نکار رو فسخ کنی من نکارو رو فسخ میکنم من با تو زندگی نمی کنم این وقتی که اینجوری کرد و حضرت مغیس رضی اللہ تعالی عنوه یک عاشق بود شیفته بود دنبالش افتاد گفت بریره منو قبول کن منو رد نکن اصرار مغیس بر اینکه قبول کنه و بریره گفت نه قبول نمی کنه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیہ وسلم به حضرت بریره فرمودند که بریره مغیس رو قبول کن گفت یا رسول الله عمر هست این دستور هست یا یک مشوره هست پیشنهادی هست فرمون این پیشنهاده امر نیست چون شریعت می گذاشته، بذاشته امر نیست پیشنهاد دی. فرمون پس من نمیخوام. اگر امر هست الان راس والعین بر چشمی بذارم امر شما رو اگر پیشنهادی هست مشوری هست در مشوری من که میتونه تصمیم بگیرن گفت بله من نمیخوام، من مقیس رو نمیخوام، نمیخواهم در کوچه های مدینه گریه میکره و بری روان قبول کن ایک روز نبی مکرم اسلام صلی علیه و وسلم به حضرت عباس گفتن گفت عباس نگاه کن عشق مغیس نسبت مغیره مغیس نسبت بریره چقدر داره در کوچه های مدینه دنبالش افتاده گریه میکنه تنفر او نگاه کن اصلا کنار نمیاد اون هم تنفر کامل این هم وابسته کامل اما قبول نکرد و این بود ولا در ولای ن... معامله و خرید فروش بردگان ولای دیگر داری ولای اسلام این کسی بر دست کسی مسلمان می شود و کسی رو ندارد بعدها دیگه کسی که او مسلمان کرده ولا مال او یک داری معالات، مو... عقد موالات دوستی شخصی میاد از بیرون، بیرون جای، از کشور خارجی می آید. کسی او اینجا نداره دستو مثال میشه میگی با هم دوستی هر چیزی که من کردم اگر جنایت کردم تو حالا ولی من قرار میگیری فردا باید دیگه منو بدی و اگر تو کردی کمک میکنم و بعدها اگر هم مرد را کسینا همین دیگه ولیش قرار میگیره